أمي شخص يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. غيرت الله الكسر فرامي خنا وبداوتي بادت ميجرة. النبي إذا رمى رصنا ورش نفع مي رصنا. ذلك هو الضلال البعي. يقوم رأي خيل الدوس. يدعو فرامي خنا وبيبات وداوات ميجرة. كسرك لمن ضر وكسر جذارش. نزدكت رص أقرب من نفعي السودس نزدكت رص. لبئس المولى أح كمجتيب. ناصر و یاور دوستیس برزی همه کس ر کی دعا امیکنورا و ولا بئس الاشیر و چی بات چیاس نزدیک و اقربای هستی اسن چی بات ترین از جمله کسایی که نزدیکاش چی بات ترین نزدیک نزدیکی نزدیکی وای است درین چه ببین لحظه وجل اگه ما شما در سنگی دنیا خود ببینیم کسایی که کافر میشن اینا درقت با غیر از الله چی در عبادت میگیرن که از نفس ضررش براشون زیادتره حتی در دنیا البته می‌می‌شود اما می‌کنیم. من کسی که ترجمه می‌شه نفس چیزی حتی از داره زردارش بود. نفس چیزی ما کوانتانو زردارش خیلی جهت داره. خیلی زردارش یاد داره. کسی که با نظام تو غوطي هست زردارش خیلی. کل معلول می‌شداردند. در تمام درمان دخواهیم. باید چیز خلی بیش سالم ولی کی بادی است که باید دوستی را گرفته ولی بیش سالعشر. در این جبرداری بعد بیمانش که مسئله الله را پرستش می‌کنم بگویم الله. پیامینا فرق کله گیر پیدا کرد تیرامیش ما گفتیم که ساراش برادران دور شه وا مثل فرعون ایج وقت اسنا گفت بده فرعون آسمان پیدا کرد زمین پیدا کرد هیچ کسیر نگو بداو نکرد بر فرعون فرعون تگوف کنه ربکوم مالک و پروردگار برتر شما هستم کله گیر میفهمم که فرعون مثل ماور انسان هسته اولش دنیا آسمان ساختنه آسمان قبل ازی و قبل از داشدارش بوده این دیگه فقط نمیز در اینج غیر از قانونم دیگه قانون دیگه چینیست قانون دیگه در اینج در مقابل زي ماردة ما قوف تمكي ماردة ما هست ماردة ما هي هستن منافق ميشاون مسلمان منافق إذاك هات بقول ده ران صار حدث إن الله يدخل الذين آمنوا الله حزب جلبيكم من داخل ميساد الكسايرك آمنوا إيمانا هردا وعمل الصالحات وعمال شهيد سيرنجم ده ران جنات تجري من تحتها الأنهار بغايك جناتك استحدثش يا سيرش جويها الروانس ان الله يفعل ما يريد الله اللي بترقبوا خامه يكونه يدرك بو خ الله يذل ميكني يمشي فاتي الله عز وجل ان الله يفعل ما يريد امروز ما در जिंदगी خوت از امريكا تشو جور كرديم كي يفعل ما يريد در जिंदगी خوديم کارو جور كرديم مردوم وقتي گبرد ميش نه بكشر ده باشين کولتا شو امريكا ها كرد كاجو كشتاجو ایر امریکا خواستی رو میکنه ایر پس کدیره كل... تو ب... کرد کل یه فلو مایورید است هرکار رو بخوایر میکنه در بغانستان داخلی دارم تبریغات کردن که ما سه چار اینچ یا دو اینچ کس ایرام امریکا ها میبینن دو متر آدم ها ندیدن شیخ خسامه دو متر قلوس است او رو نکردن میکنم ما سه اینچ میخوا پایدا میکنیم در کجاست تماما دروخ ببین دوای خدایی از کار کُر بخایم ما کردن میتونن هر کسی رو بخایم هر کاری در هر کشور بخوایم کرد میتونم و این را با الله عزوجل قسم که میخورن هیچ کار کرد نه میتونن آمریکا از فرانسه نازیو تراستان اما ای جنگ تبلیغاتی است نام رستم بی عز رستم یک قسم دروغ دهن ما نام رستم بی عز رستم آ مرکان یظن خب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 در این کشمکه شکست الله بر رسول صلی اللہ نفرت پیروزی نمیتا بر ما میتا پیروزی بر ما پیروزی میتا در اینجا ببینن که منکانی اللہ نصر الله فی الدنیا والآخرة اگر کسی به گمان است که الله از و جل رسول رو خدا پیروزی دنیا و دن آخرة یعنی میشه تبلیغات میکنه پروپاگان میکنه بی اعتقاد است پس ای باید چی کنه فالیم دوت بن ال بسبب اینکه نیم مقصد ریسمان است، ریسمان را با آسمان بسته کنه. خدری و مفسرین اختلاف خرجدار دیاباد میشه رو به این میکنن. ایده مفسرین بیاستن به مسالمه که بیگر می ریسمان را، ریسمان را بیگر با خطا با آسمان مباره آوازان کنه با آسمان. ثم الیقتا سپس آسمانش گاف کنه امین نصات که نازل میشه جلّ وزیر بیگر. خیلی کار کنه. ما خراسنلک د پیروز میسازیم. بخوان نخوان. در دنیا در آخرت اگر شما نمیخواین یه باعث خشم شما میشه پس رسمان را بلند کنین در آسمان با آسمان را شگاف کنین نصرات را میشه بگیرن پیروزی را میتانین ایخ ای کردن را میتانین خب برازی که شما این کار را کردن پس ببیندم این شخص هل یو بهبن نکیده ما یغیر کید چاره و هیله امی چاره و هیله دا سنجید ما یغیر چیزی که بخ آیا میگه ای از بین برد یعنی خشمشه فرو نشاند ایک کار کرد. رفت آسمان بلند شد. آسمان شگاف کرد. <تصفح> گشت که پیروزی الله به کجاست که رمزی این مانیشم که به رسولا سرم برسه. ادهی مفسیرین به یه استن که انجا مقصد به این جای است. که ما و شما در تا در روزمره در گفتوگای روزمره هم به کسی میگم که برو خیل. خدا بو کش. خفت. خدا کار میکنیم. پیروزی امدانی است. یک شخص میگه چی کنه؟ دوت به سبب لسما، سما در اینجا مختصره سقف خانه است. چت خانه هست میگه چی کنه؟ ریسمانو بگیره چت خانه رو کنه؟ ده گردن قط پرته، خودا خفاک کنه. بوکش خوده پیروزی امدانی است که یا نخواهند. و كذلك انزلناه آیات بینات ما همچنین چون نازل ساختیم آیات و كذلك همچنین چون انزلناه آیات بینات آيات رؤشن النازل كرد أنزلناه قرآن كريمة آيات رؤشن النازل كردم وأن الله يحدي من يريد والله كسرك أبو خاتمك داعمك دلهم دا قسمت دا الناسات الله عز الزوجل هجبيات براد ربوش وقت كامري كده وعسان هملا كردم بوش بسرات الآن كردم ما دري جن كيم يمشي في روز ميسي عمر الله الزول إبزوش كنده بشار جبوا جالب جات يجيبش إيه ب التاريخ نوشتم يجا سهل ميسي إيجيز Kuf kebohs ma rawaadiyya shikas da. Allah ma rawaadiyya pereuzi da. Kufwaleh ma menetazir istim kudam az yawaadiyya mutahak. Kupdarih shak neske wadiyya Allah mutahakak misi. E 5 salli pish. Bohs ma rawaadiyya da kisikas mekhoin. Allah mage peiruz misi. Kufwaleh ma menetazir istim. Kwaadiyya az yi droog kazaak. Az yi afak. Az yi mutahakak misi. Ya az Allah azza wa jai. Yudun shak. Az Allah azza wa jala mutahakak az untuk mengonung mengunakan tentang penonton yang saya kurangkan saya zat andakan dan jangan beritahu puan saya seperti yang akan dilakukan dan kita berseula tentang ia diaful UK serta siapa dianya oses FiveRam thuskah Katakan atau alamun mengere stance bahawa나�ما이며 itu berbaca bahawa juga saya tak tahu Anda tidakbetul menurut Seattle mir Tiger dari primero saya, karena Manifas dan balik itu kemudian kehulah menurutakan insyaAllah untuk untuk menunggu yang50 bahkan25 ke formalidika jauh Yehuda Merimung ke والصابعين، صابعات دارينجا كثيرا استكى پهرب ابراهيم عليه السلام بودن مدى يبودن كما ابراهيم عليه السلام استيم وفرعا البقائشن در عراق است والنصارى والنصارى, والنصارى والمجوس، المجوس كي مردم اكثر مردم فرس مردم فارس ينا بودن مجوز يابودن والذين عشرب كسانك الشريك شرق عن بعض بالله جول الشرق وردن بالله عز وجل إن الله يفصل بينهم يوم القيامة در روز القيامة الله عز وجل ميانه ميانا فإسلاميكم إن الله على كل شيء نشهد. الله تلبر حرش شعيدك واحد. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ أين يديمك؟ أن الله كاللح عز وجل يسجد له كبيرو سجد ميكونا. من في السماوات ومن في السماوات؟ كسك در أسمانها وكسك در زمينها. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. أفطابا بالله سجد ميكنا. ما نجوم سطرقان هم بالله ده ميكنا الجبال كوهام سجده ميكنا شجر درختان هم سجده ميكنا والدواب چاربان هم سجده ميكنا وكثير من الناس وكثير مردم هم سجده ميكنا وكثير حق عليه العذاب اصلا دا زياد مردم هسته بالله انه حذاب چه شده حتمی هسته بدونها عذاب شون ومن يحن الله وكسرك الله كسرك الله خوار بسازهو توهين کنا فما له من مقرم Baiz gira meyikunandai ve ye wujud nedaara Ikhwar zelil zabun is Inna Allah yafعل maya shah Allah cedirga bukhaa meyikunam Allah yafعل maya shah Dir haris rasatam alias sayyihayna sahabu Adiis bukhari muslim is Kephe abizaar guf Kephe Rasatam barama guf kephe Atidri Aynatadha bu hadhi Shams Kephe abu zhar Meyidani kephe Yavtabba kujam merah قلت الله رسول الله قلت الله رسول الله جمعتها الميدان قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ميروت وبزير العرش اجداميكنا بعل الله عز وجل ثم تستعمر فيوشك أن يقال الله ارجعي من حيث جئتي بل زمك ايشي ميكنا سابر ميكنا خوانا زيازك بل شامر شوكي مطلوقو لمياناكنا عز مشرق بل زمك اكبرت عصترابت مشرق سلوكو خو از روز آمدنی است که وقت گفتم میشه که پس دوباره برو از چی تو لوکو. از مغرب تو لوقو. وقتی که از مغرب تو لوقو میکنه شناق قیامت است. قیامت برای زیان آمادنی است. در حیثی که از رسول صلی الله علیه و سلم میشه که عفتاب و محتاب کس دم مخلوق از مخلوقات الله عزوجل استن. و ایج وقت گرفتنه میشه وان با خاطر مارگ کسی و با خاطر زندگی کسی. ببینی یک چیز بیشتر مشکل بشه بعضی مر اتوبیش بعضی مسلمانها هست. یک حالت همسان میام، افلونین مرد آسمان، قسم فلانی مرد باران برد، فلانی مرد آسمان سرخ شد. این اقای در سابق قام بود. وقتی که رسالتن پسرش وفات کرد ابراهیم رضی الله تعالی عنه از ماری قبطه بود رضی الله عنها وقتی که وفات کرد در امروز آفتاب گرفته شده بود، آفتاب فکر می گرفت شده بود. ذی گرفتگی آمده بود. بعضی کس آمدن گفتنی به خاطر وفات ابراهیمی کارش، رسالتن گفتنی و فنا ایدو قدرفته نمیشه اون مرگ و با زندگی کسی اینا آیاته الله حز وجل استن از قدر ما میشه ببین بعضی مشکلات میشه بعضی قاعده است که وقتی تصحیح باشه بعضی مثلا خدای مو شما کیست بعضی کساد که مثلا نه کار میشه میگن به خاطر از این کار شد یه کس مثلا وفات میگه را کو طوفان میشه می نسر قبرستان انسان میره طوفان میشه میگه به خاطر از این کار شد در حالی که ای مطلقاً بیرز خداوند Agar mina, shalallahu alaihi wasallam tidak atmanira mardu magamisha, kerbau marjeki tulmesha, buaya kitulmesha, ni ni. Tuvinin Rasulullah mungkin, nabi azza wa jalla. Walakin Allah azza wa jalla tidak terjelal sebiji pun dari cipta Allah. Waktu kata Allah azza wa jalla terjelal, mereka bukanlah makhluk dan makhluk berusia tertentu. Dijadah hari Rasulullah saw, kerana beliau tidak pernah berbicara tentang hari Rasulullah saw. Kuhawinak, kerbau berjauh دی درخت‌ها که پا با پاورج هستن اینا سجدهشون چینه وا هست اینا سجده را به سایه های خود میکنن وقتی که سایه از طرف چپ براس میره چپ از راس و چپ میره ده تو حادثه سجده میکنن بالله السوج اینا پپ استوار هستند اما افتاب مختبت همه اما چینه وا کیفیت سجده را ما نمیدانیم چینه سجده میکنن الله. و چی دل بالله دلیل کیفیت پیش خوده هر مخلوقات الله زوج المینن از زمین تا آسمان همگی به الله زوجل چی هستند و خاشع هستند در حديث در دل عسارة داري رضي الله عن طول كي در قسمة المشيات كالله جزر بخاها ميكونا قيل لعلي بعلي دارهم قفتشت ان هنا رجل يتكلم في المشيات قفت انجاك شخص يست در اختيار در مشيات الله جزر صوبات انجاك شخص يست در اختيار در فقال له علي رخاس برش قف علي دارهم يا عبدالله اي بنده خدا قف خلقك الله كما يشاء او كما شئت گفته را که الله خلق کرد، بیت و کیفیتی که تو میخوایی خلق کرد یا خودش مر خلق. شا شا. ای تو را میخواد خب، مکیفیت خودش میخواد نه گف خودش که میخواد مرا خلق کنه خب. فایوم ری دو که اگر شاوداشید، وقتی کتره بیمار میسازه، ای به مشیت تو هم مشیت الله هست و جل. گف نه مشیت الله هست و جل. بعض برایش گف فجفی، فجفی وقتی کشورش شفاف میاد، ای شفاف به اخترار تو هست که تو میخوایی، یعنی کل الله ترابو خی شفاف میگف نه باز برش گفت که در اخیر باز برش گفت گفت که قسم به الله عز وجل گفت فکر غیر ازی برای من جواب میدادی دادی گفو روید کدش دو چشم از گفو رو من رای شمشه قطع بگردم نمشته اتا الله صحبت بکن نه کسی که نه اختیار داشتی که آمدی نه به چیرد نه به یکی من پدرم فلانی بازد تو کسی باشورا نگرده به این چیزا که ما مریته خانواده تولد میشه از قبیله فلان میباشم زبانم واهدی باشه اینی امروز من بیگیری امروز من نگیره بایت من ایده مشیت این الله یفعل ما یشاء سرک الله زوج البخاری میکنه الله زوج المیکنه وای سجده نیست برادرش سجده یهو چیز خیری باطش عظیم است ما رگه باط روتینی به با خود جور کردیم عادت سجده خود چیز عظیمی شیطان است سجده فرار میکنه شیطان مجرد میگه بفهمم سجده می هر کسی که سجده میکنه در دنیا شیطان ازارها بر او میکشه که اه که من سجده نکردم من الله بر ما گفت یک سجده نکردم من الله قدوران حسد میکنه واجبه بنی آدم حسد میکنه به این چیز پس به بگی باشین که ما حق دی سجده رو برادرها با کنیم و رسول الله صلی الله علیه و آله اکثر اکثر جوایز طولانی میکنن سجده بود خوندن در نوافل اکثر طولانی میکرد در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله ما چیزی و آله لیکن و شروع کنه بمو ادی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کد دعاوا مو منسان دعا ریت میکنه که استاد هم دعا کردن هم دعا ریت میکنه و مو کلمه ترجمه ش هم با مو خود به خود ترید میکنه مثل توتی و و از الله دنت زمینه خا هاگان خصمان اختصمو فی ربهم ای درینجه هاگان خصمان اختصمو فی ربهم دو دوشمن در خصام دری که سروایتی مختلفی میه علی الدیرالمیه میگه اینه آیاتی که در باره مناظره شده این چه وقته در وقتی که ما در جنگ بدر سین نفر یقه جو شدیم با سین نفر مسلکین جنگیدیم اونار با خاطر بسن میقتصام بود خصومت بود بین ما و دشمنی عمل دیگه روایت دیگه هم است خو همه گی به می است طرز مو خصومت گرفته که خصومت چی است خصومت جسدی و فیزیکی بود تا <تصفيق> و <تصفيق> که <تصفيق> در جدال مناظره ها همگی به شامل میشه دو خسم دو دشمن این دشمن که با لگاه دشمنی میکنن یکی کافر باشه که مسلمان قفالذین کفر ما کسانی که کافر شدن میبینید برای کسایی که مسلمان استن الله زبرشن اینه متر باشه روزانی که به اشاره شد خب کسایی که کافر شدن فلذین کفر و قطعت لهم ثياب بدین لباس های آماده میشه بریدن میشه لباس ها رو قطعت مثل که مسلمان تکر میگیره خیاط میگیره شروع میکنه به بریدن ازی و که به اندازه‌ی مو شخص که تکیه خود رو برش برده بندازی همون چی برش کالا برش چی کنن تحیه کنن بر کسایی که اهل جهنم هستن الله عزو جل کالا تحیه می کنن خواست چی از آتش کالا انسان از آتش می باشه این تصور کنن برادی چیز تصور انسان کنن از آتش به انسان کالا جور شد قطعت لهم ثیاب بر مهیام میشه و بریده میشه. Lelasha minar, azatesh, azatesh. Bini, mosh, mosh. Ira, saya tak tahu. Mungkin ini, ini azatesh nis. Ba, ba, ba. Sejak satu jam kecil ini, satu jam kecil. Ziarah, sejak satu jam. Kita sudah banyak dafter betul, sejak satu jam. Azatesh, dunia, kita sejarah, sejarah, jahannam, kita. Abu Afthah, baraji, kita kau itu ares. Ira, kita. Yusabu min foku rausuhi mulhamim. Natal lepasnya dah terjahs, yusabur ikhtamdem mershawat. Min fokuh mazbalai sarishan fokuh rusib. Alhamim abjush, yusharu ma yusharu bihi, obi zauf mersh. Ingu dah kita mersh, zauf mersh, ma fi betuneh m. Cik cakap dar, batin haishan, dakhil shukam haishanas, wal jilud, wa post haishan. Tapi es, waktu klibas insan dah terjahs لباس نار آتش باشه. و بالا انسانم چی بویت ریختانده ما حمیم, حمیم آب جوش شاندار ریختانده شون. خب او آب جوش او آتش را که الله میگه. یکی خاطر ما است که اونجور می کنه. آتش را که الله زوج المحیام میکنه او حمیم را که الله زوج المراد ازو هست. ولهم مقام من حدید. نیست مقام هم مقمع تازیانه گرس. برای برابر میگه تازیانه هایی است از آهن ساخته شده که بوش چی میشن؟ Zaman siapa? Kala ma aradu ayahxurju minha min gham ina m ejar waktu kena mekan kerja min gham hazi halat birun siapa? Uaidu fihah. Pas dua hari n baas gak dalam siapa macam ni. Karena siapa kata siapa? Waduku b tasha ni siapa agab harib. Ya zab harib, agab agab bafrot. Khusus darah siapa macam ni? در حالت ببین یک مشهد روز قیامت مشهدی که در داخل جهنم ما شاء الله زلموش مار نگاه کن برادران در بی دنیا که این دنیای فانی در اونجا تا قرار اسی موجود نذاره در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگه حدیثه هست در صلوات و سلام که هر انسان که بس برس دو جای است دو منزله است دو جای دو منزله ها یکی به جهنم و یکی به دو سخن كل ماش Tua kisai ki bina isim hammi gyi Dua manzil daim Has tarafi Allah Aziz Al-Baramad tahiyyashudha Eki ba jahannam ist Eki ba jahannam Wakti ki insan ba qabr bandam isha Hadis Rasulullah SAW Wakti ki insan ba qabr bandam isha Wakti ki insan ba qabr bandam isha Wakti ki insan ci isha Insan nikukar mi wasa huwush Mashmuli rahmat ya Allah Aziz Al-Baram isha Beraz iya awaline bar baras guftam Misha kak ba tarafi chapit bibi Mata taraf chap bibi bini Dari chai baras basm کل کنچی برس باید میبینه که حالتی بشار بعدی هست جای اصواتش هستو انواع مختلف عذاب است. ای خوف میکنه برس میگن برس ملاکه برس, برس میگن دو ملکه برس مکلف پر اینجا هستن میگنی منزل تو بود درین اینجا که تو باید اینجا با سکونات میکردی درین اینجا آرام میگرفتی خواه الله عز و جل رحمت و خواه بالایتو نازل کرد طرف راستت میبینه که عنواي مختلفني مطاع الله عز وجلس قش ميسي ميجا الله عز وجل ترى ما وش مل رحم رحمة تخد قدر نيت أعلم ميجا بيت نجي داخل ميسي. انسان ميجا؟ يقول إنسان إنسان أجلس طبيعة الإنسان أجلس. ميجا مره بانين كي ما برم خان ودي خد خبر بسازم كنا خب خاطر ميجي ريا ميكنن. يقولنا را مخبر بسازم را بقول في ما في وش المطمئن وشين. مشوار جاي خبر افتي الله عز وجل مره خیلی خیر لازم به نعمت کلان امر الله عزوجل چکر پروردگار بان شما آرام باشن میگن انا هذا ميگه... اجازه میگه داخلش میگه فقط بی باش که وقت آمدنی است آل میگه آرام بخواب آرام خواب قم یعنی بی یمی آرام خواب کننش با می منظر آنقدر با سرعت تیر میشه یک ور قامت دار باش و یمی تر ازن به نعمت که وجود تیر میشن نعمت نعمت بی بینی تو تویاس که انسان چورا جت درال که امروز هست انسان منافق و کافر یا بدبخت که الله عزوجل رحمت خود رو بالای علی شنا میگردونه ایر برعکسی ای کار صورت میگیره واسه که به طرف راستت بیبی تو از این نعمت محروم شدی با کفر با عینات با سرکشی با دروغ با کارایی که میکردی همه تو خودت محروم ساخته از چیز ها الی بی جایتیس خب اگه این شخص این جرات نمیکنه میگم به خانواده خدا خبر میدم اگه جرأت میکنه که مرا بون میاد داخلش میگم بر ببینیم که Baz harap tak ada masalah. Biarlah ini Allah Azza Jalal Maksudnya ini, kita berdua dikemudian mas barzakh orang insan. Izin lagi barzakh itu, izin lagi dia jadi kemudian mas ke baru siapa berjalan dan kemudian mas berjalan. Dia awalnya terhadap apa saja. Jika orang insan ini dia pilih untuk duduk di puluh terdekat, nabi ini mana kita الله Allah وجل موش مره زاهله جنات بغردان الله عز وجل موش مره جملكه شايبه بغردانك اول برمه طرف شف موش عنده رشه بودر ماشي باص طرف راس ما موش عنده واي شيء كبير ذره حتما حتما حتما حتما حتما بيقين يا وداي الله عز وجل اذا سرحر قدام موش ما تيرش دنيس بيقين ازي مطلقا غير زينس ازي محاكم أزم حكيمة أزم حكيمية الله دولك سفراغ كردانا ميتعانا ويأز جملة آيات تخابت كما تلابات كردان كدر مجد شيئا سجده واجب ميشه بشيء بذلك الله سجده كنا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله عز وجل داخل من قردانا كسوانا كيمانا وردانا وعملشوا يستيانجام دانا جنات باغهاي تجني من تحتها الأنهار كدر زير جو برها روانس یوحلون فیها ببینید در اونجا لباس هست چی بود؟ از آتا شبود. اما در جنت چیست؟ یوحلون اینا آراستا میشون. یوحلون بر زیور اطلاق مش در زبان عربی. اینا آراستا میشون. با چی آراستا میشون؟ فیها من اصاور من ذهب. با دستبنهای تلائی. و لعلها و منوردها و جواحر. لباسهم فیها حریغ. لباس چند کس در اینجاست؟ از ابریشم است. این فرقش ما ببینین. اونجا لباس از اوطاشه این لباس از چیست؟ است؟ از ابریشم است. و ابریشم مکالله الله ابریشم گفته. در اونج چیست؟ در اونجا انسان بالایش چی رخته میشه؟ آب جوش ریختنم. شما در اینج چی است؟ در اینج برات لولو جواهر و مروارید ها است. بس ما باید باشیم رادار که با خود بیایم. چرا این زن... چند روز زندگی دنیا چهار پاین روز تمام میبینیم تا دنیا رو شما ببینید که اضافه کنین ما شما که این برادرها باز حساب 60 تا افتاد 40 مرد کرد برادر پرسان کنین سال 70 تا چلمون کرد با تا قسم تیر شد میگم یک قد کمتر ما عمره ببین عمره بی چیست ایت ترک نعمت بزرگ الله عز وجل ما بیاین به دنیای فانی ترجیح سر دنیا فانی این دنیا فانی ای نسبت به ترجیح بده بس از ظلم بزرگ است برادرها و چی نبود نیم تصور و شما چیم شما, شما خانه ی نفر میمونی برای تصور تساوی کنند، خانه ی نفر میمونی برای شما رجت میمون کنید و هدیه سعیر را سوزش فقط شما سیر روز آخر میمونید دارند دا خانه ی کیست؟ روز چهارم تر امت نفر بوده که یا الله، جام کوچی بار تبر با خیر، خانه ی کیست دیگه بودن؟ حتی او تغییر میکنه روز ش... روز اول شما هر کسی قادر میشی باشه روز دو رن مشکل فرد منانه نوش مشکلات دیدار میزنی. ده سهو می‌بینین که تا حالات فرق می‌کنه اون طور در تعاملی که با ببین با چج یادگیریان و شوخی چیز میشه و تقض دروازه زیاد میشه به ایمان که برو بخیر دیگه خب آره می‌بینین که ما در زندگی در زندگی دنیا با اجز مواجه هستیم برادران جنت میفهمین جنت تو در جنت میمان انسان نمی‌باشی حتی میمان پیامبر نمی‌باشی که از جمله سخیترین مردما میباشن تو میمان ربت می‌باشی میمان کسی که تو خلق کرده میمان کسی که تو پیدا کرده میمان کسی که تو را آفریده تو را میرنده پس دار درزنده کرده و میمان عبدالعباد عبدالعباد میمانی کسی هستی که مددقن در نیمتی چیزه گم نویسه عبدالعباد تو میمان هستی همیشه پاینده و جاوید سیدر جرد زد yards میمان همیشه میمان هستی نه در اونجا پیشوانی ترش کسی در میبینی نه در اونجا اید تو از کسید نه از ملائک از چیز اید احساس مطلق بلکه همه ملائک در خدمت تو هستن همه تو بر مرحبا بر تو هر روز بر تو میگن ما بر پدر خود در روز مرحبا نمیگم هر روز هر روز اما در اونجا همیشه ببین همیشه تازه و جدید خب ببینین ای داره بیم ای کنه ک بررحمتی والا برادره کار دولت الله عزوجل تطبیق شوی اگنه فرق کرد با جنات داخل نمیشه. اداره بیم ازش که خوبی خوبی خلاص بودی برد چی برد؟ رحمت بیم ازش که با از داشت. تو رمی راک ش الله عزوجل. خوب ما با کدام عمل خود خط بجانات بیتر بیشتر عمل کمی از ما خاص نمیشه برادره. آن بیشتر اندک عمل الله عزوجل ماشمه را بجانن داخل میکنه. و در مشمول رحمتی الله عزوجل میشه. بس ما باید برادره باشیم خود با خود انسان عاقل قرآن برای عقل آمده بر دیوانان آمده می‌کشه قرآن پیدا نمی‌کنه دیوانان هستن ما انسان عاقل خود با کار بندازه که ببینن کی نعمت است کی اما این نعمت است که ابدی است حالا کدومش ترجمه می‌کنید این نعمت یا این نعمت ترجمه می‌کنید وقتی انسان نعمت ابدی رو ترجمه می‌کنید سعی اس در نعمت لذات لذات فانی موقت هذا ام گناه لذت داره همه لذت موقت داره لذا تیبشار ما است. از اس. یو خدیری سرشناسان پای خدمی ما نباید جمع باید. از یو خدیری شما بیبنن که پایامبرا ورماش هرماش قستن. ایهجرات های ابراهیم الله علیه السلام به هجرت وفات میکنه. موسی الله علیه السلام به صحرا وفات میکنه. پایامبر ولول ازم مس، پایامبر ولول موسی الله علیه السلام. الله باش سواد کرد. در کجا وفات میکنه؟ در مصر وفات، در شهر وفات نمیکنه، در صحرا وفات میکنه. موسی الله علیه السلام در صحرا وفات، در هجرت وفات میکنه. رسول الله در ہجرات وفات میکن اس ہمگی مشكلات متقبل ہوئی خاطر سے بخاطر ہدایت بشریت بس ما بیت خود بخدی برما بج ما بیت متمسک چورا انبیاء جنت دیدہ بودن یہ قدر مشکلات متقبل شونے ما یہ قدر مشکلات زی خاطر اللہ عزوجل ما شمار چھکنا توفیق وی بدکی بہ چیز کی کہ می گم عمل کنیو می مي شمار مهمس برما ما چیز الى الطيب من القول اينا هدایت شدن بسوء وي... الطيب من القول سخنهای پاک سخنهای زیبان یک و هدو الى صراط الحميد و برای ستود شده اينا هدایت شدن درجه مفسرین بعضی کسا میگن کی در آخرات است در جنت سخنهای زیبان میگن امیشه و رای شن الله راست است بعضی مفسرین بيستن که نه حتى در زندگانی دنیا یعنی انسان مومن صفات است است فحاش نیست دشنام نمیت همेशा اقوال نیک از مشنوی در مجالس هر نامجلیست برادران باشه هر نامجلس اقوال زیب از مشنوی و اقوال زیب به خاطر به این راه الله زول در بره چه کده مت ارزان کرده که برای راست برای کسوش در راه حمیدنا الله زل رحما این که ان الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله وأنا ما نيم سدمي كنا نما نيمش ونام سبيد الله والمسجد الحرام بس مسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء آية وارككاس بس إن بيستن آية آية الشهادت آية مك مدينيات شو ربك خاطريك خود السياق دلالة بييميك إن آية مكة وشو ربك خاطريك سات اس از مسجد الحرام وقت شو كي مهاجرين هجرت كردن مسلمان از مكة ومدينة هجرت كردن ده نجيبه برضو خذير سات وقت شو بييمونا كنا ما نيشتن كنا باید دوباره ما مکمیان و مراسم موسمی حج اشتراک نمون عمره کنن در مواسم مختلف سال از این خاطر اونایی را مانیشن که سعی کجرات کرده از اینجا باید در اینجا باید باید باشند نمیتونه خیلن که شون کافر شدن امس روی الله تجل مانی میشن خب وقتی که میگم از روی الله تجل مانی میشن یسوت در زبان عربی صدام فعل متدیسن فل لازم یعنی به این معنی ام خودشون امتنان میکننم سبیل الله چی اس هر کسی کی ما جووم مشاهده کنیم کہ ولو به اندکترین چیز که پیش انسان تصور شو از رای الله ما نکنه دی ایت داخل میشه با فساد اخلاقی با فساد اجتماعی فساد هر چیزی رو مشاهده میکنیم کسایی که همه شریک به می که باید مسلمانا بود گمراه شدن اینا کسایی هستن که از رای الله زود مردم میخوین باز دارن خب کفر اضافی مرد مشکین قریشی بود که از مسجد حرام مردم اباز نگمای داشتند میگن آمدن میتاوانن در حالی الله اللہ دلمهی که ما این حرام حراما چی جور کردیم؟ جعلناه لیلناس سواء ما ایر گردانید برحام مگی چی کسایی که العاکف فیهی کسی که درونج مقیم است و کسی که دور پیش میانی مقصر از بوادی کسی که در اطراف اکناف مکه میانی و کسی که درونج زندگی میکنه ما همی برای اکسان می ناجور کردیم پیادر موصیم حجبیان در اینجا حج کنم ومن يرد فيه بالحات وكاستر نيجي اراده الحا داشته باشه یه تفسیری می‌کنم با ظلم با ظلم و ستم نذقه ما ممچیشان بظلم من اعبر بنعلیم ازا رو دادنا آیات آیات بسیار آیات آیات تحذيريه است رافي الله الزوج الاسد ضيق قالت بيس برادر اكيد بمچيشه اختتام می‌کنم اینه دهيتو تفسير كار داره مكه جائز نزد الله سوجن. با کیزترین مكان نزد الله، اذا يغيت خدلات به فضل ميکنه كي اماكن به يك شكل نيست، يك مكان بالای مكان ديگه فضیلت داره. از جمله اماکنی در صدر قرار داره مکه هست، بس پس بو مدينة می، بس پس جو مناطق الشام می که در اونجا در محورش چی قرار داره؟ بيت المقدس قرار داره. الله ورسولته دوا کده، باز مثلا منطقه ی امان معك الله عز وجل دواک، رسولان مرشندواک کده. اما خودی مکان که اسم مکان مکه کسی مکان مبارکست مثل مکان مدینه باره مثل مسجد الاقصی اینجا الله عز و جل ببینید در اینجا مطلقا شراعیت فرق می کنن مکه زوجگوه برخوردار است که هیچ شعر برخوردار نیست یک نماز در مکه که میشه یک نماز مسایبه چندست؟ بیگلک نماز است و در اینجا حتی بعض فقه ها ویستن که تنها در خود مسجد حرام نی بلکه در هر جای مکه که نماز یک ویژگی از که خاص برای مکه است و من میدم در مدن سرف در داخل مسجد نبوی است. با هزار نماز و مسجدی اقساط با پنجشنبه نماز مساجد. یه مدت که در جایی که نماز میکنی یک لک نماز مشری میشه. میبینی چقدر یک یک یک مرتبه و منزلت شرف بزرگی است برای مکه است تریف الله زوجالدار شده مکان مقدس. یک. دومی که ای شهر مبارک از در اینجا قلی شهر مبارک. در درینجا الله عزوجل گفت: "کاش تسمیم گونار در اشاره داشت، تسمیم قاطع." تسمیم قاطع، پیدا میکنه من میخوام این کار کنم، اسبابش مهیا میکنه. ولی اگه کارام نکنه، درونجا پشت اسبابش میگه دی کار نکنه. الله عزوجل ایات را تشریح تشده به الى الله عزوجل عذاب داره تاخد میچشونه. در مکه، این باید داشته باشن. چیزی خاطر با صحابه مکه میگروختن، زندگی نمیکردن. خوف میکردن، چیزی که موندی کنم گناهی کهش مرتکب بشه. ب خاطر ای جوای بوده میشه باش پاک بود نگهد داشته بوده چه این سرزمین مقدس است رسول الله صلی الله علیه و اسلام قبل از وفات وصیت کرد وصیت میفهم در وفات چی می باشه یعنی مهم ترین چیزی که انسان واسیات میکنه در وفات آخرین وصیت رسول الله میفهم چی بود این بود که اخرجو المشرکین من جزیره العرب مشرکان جزیره عرب بیرون کنن بگو بیرون کن نه چیزا معنی نداره عزيق خط المرور الخطاب باخرين كشريك بدون كات أسخيبار بدون كات جي وده بدهن كنا بدون كات شنو هو صديق بجنجوه مصروف بجنجوه يبدناه بمرت الدين كذا. وزي بعض صديق هو الله تعالى عن بارس دوسال وتشان ماي. وтик ومرر الخطاب رضي الله عنه صندخل آفة كيميزنا تبيه زي مشفري مسلمانة. هي بود رايبد. بارس يمرر الخطاب شو ميكنه وشترس صم تدبيخ ميكنه ومو يودنا زي آذی جزیره عرب خودش مقدس است. معمولاً جزیره عرب میگن برادرا به این متفاوتیه. به جزیره عرب کیست؟ لی مقصود جزیره عرب کیست؟ کشور فیلیسعودیاست. یمن نیز داخل میشه. کشورای خلیج همه جا داخل میشن. قطر، مالزی، تناتومان همه جا داخل میشن. این بنام جزیره عرب میگن. درامی جزیره عرب، از درامی جزیره عرب. مشترک در این جواید قومات نه یهودی نا نه نسلانی نه مشروط. این وزیفی نظامی استلامی است، وزیفی خلافت استلامی است. وی وسیت رسول الله صلی الله علیه است. لا یشتمی و دینان بیچتلاق. دو دین ده جز اعراب جمآن آمیشه، دو دین ده جز ترک جمآن آمیشه. یعنی من تقریب که مشابه پاک باشه وجود. حتی سفرت مطلقا سفرت انجام واد نباشه. اگر کدوم مشترک میای، حالا استرال مثلا پیدا میشه کدوم وزیفی مثلا که مطلقا قوم سلmani کردن آمیختن مثلا پرداخت چند روزی میشه شکل نماکار و جیب خودانجامه تو پاس باید بیرون باید شو. این سرزمین باید میشه که مقدس باید بیرون باید بیرون از کسی میتانه تا نکو فارس نیکران مناسب اهل زمین. در اینجا اهل زمان کسی بوده نمیاد این سرزمین باید از نامه بلکان باید پاک شو جی باید شو. حدیث رو داریم. در این سرزمین کس باز مقدس ترین جای مکه و مدینه هست. و ماکی خصوصیت داره. اینم احت تسمیه گناه انسان می باشه. نکسی از اینجی سفر میکنه مگه ما تمام اسباب با فراهم میکنه ولا به قدر صورت نمیگری از این اصلا اصلاش تطبیق نمیشه چیزی برا زبانه کسایی که به خاطر دوزدی میرن از پیشوا را اونجا میرن منو دوزدی کنم خب حالا عمل دین درین جامادیم کی سرزمین مقدس کی وظیفهارم اخرجو جو معنیه کل طن مسلمانان توجه باشه که دیس سرزمین جزدار کسی باید چی نشنه یعنی نمی باید نکنه امروز زمینه سرزمین افغانستانم بمبارد میشه درود عراق هم بمبارد بشه درود عراق هم بمبارد میشه بزرگ تین پایگاهی سلیبی آفرین در منطقه منطقه‌است. این منطقه پایگاهی سلیبی هاست بله. مونجا مبارد میشیم. اما استن که مردم بازی می‌خوانند که نظام سعودی باز قرآن کریم را چاپ میکنه نظام سعودی کبر و کاوره ابراهیم آرا سرانه‌باد کردی آباد نکرده بودند. ما برادرها بیای باشیم که ما بیای استن که ببینند که ای خوჯات و شتای رسول صلی الله علیه و سلم کل نزیر پا ساختن. هم مگر نزیر پا فقط بخاطر منصب و نظام خود بینن کار چی جنگات صورت میگرفتند. خب شما فعلا دا دارید؟ دا شما در امارات در دوباره داخل شوید. چی احساس میکنین؟ کسای گرفته بوده دوباره کینجا بمبئی است کالکاتا یا کدام شهر اسلامی؟ چی فکر میکنین؟ فکر میکنن کالکاتا شده بمبئی بمبایی خم سلمان فکر میکنی دیگر نصب تمام اون دواوات چی؟ تمام جای گرفتن؟ و فعلا یه ربع داشته فعلا امیالک ما در اینجا هستند. درمی دقت کنم چند ماکس است. این باعث هنگدر گرم است که مکه و مدینه باید به شکل مستقیم باید اشغال شود. گرفت آلخو اجگاری است شهران تمامش ما برندن ما تو قصودیم که نظامی همون نظامی خائن که در اونجا قاکی می پایگاهی درن موجی هست پایگاه میکن. به شکلی که در اونجا موبول برمیاره که در ایران قاکی موج در مدنیه قاکی مون با چی باشه خود دیرش مو تصور کردن برادرانی اگر ما که مد نقر ما خط چی کردیم تصور کردیم چی خط کردیم واشنتن نه چی خط کردم خوب کار کلام ما خط چی خط کردیم گریه خط کردیم وا گریه هم شاید هم گریه باشه وقتی که حاکم قرنطه آخرین پایگاه مسلمان در اسپانیا وقتی که ابو عبد الله نقب نشینی میکرد گریه میکرد مادرش برات گفت که گفت گریه و دوبات بوشم شیرین دی میم بجوشتا مشدی بمجه میمدن آل فلسطین اسپیش ما گرفته شده نه قبلی اول مسلمان اسپیش ما گرفته شده فیلا قبلی تمام مساجد ما رو با مساجد مرا به تمام به شراب کردن گلکلما فلسطین به شکل کشوار دقیما مثلا گرفته میشه به شکل گرفته میشه خب آل مثلا میام در اینجانی از این خاطر برادر ما به این که ما انس بز برادرها کس اکثر مشکل بیاد برادر ما تسواذ از نظام اسلامی نداریم شاید دی من یم په که یکی یی خد پاکستان په کتو نظام د یو غف خاط یکی ز غف خاط قطر ز غف امارات ز غف خاط شت د کیس امریکا ورو نظام اسلامي بیرونه ما دې خد برمو ګوځه عدالت تستوی اس یس ما تصور د نظام اسلامي په مچونه مته برادر نظام اسلامی معنی شی است کینی په جوه کشور نه 60 کشور ټول باید کشور واید باشه یا یک کشور باید باشه سرحدات نه سرحدات استیماری است باید باید بیرونه شوه ما معنی مسلمان حق حقی قمار داره در مکا و مدینه برو من زندگی باید کنم. ی حق والسلام است. مثل یک برادر که زندگی حق والسلام است برادر کوبلز زندگی کنه. مثل یک کس در اسلامباد حق داره که بره به قاهره زندگی کنه. و رسول سلام میگه که با دو خلیفه که بیعت شد که بشو دو خلیفه که در جهان اسلام با یکش دو دو خلیفه را بیعت میکنن یکش بکوشن حتماً. دیگه حدیث میگه هر کسی که باشه رو بکوشن. قاتلش کنن. هر کسی که باشه. Cora? Bakaian kisah zemim kisah dhu khalifah ragun jahe shunar. Cikdam shahs nafat khalifah bermungu. Al kudamaz hii waliyul amr isi ma da hii hairan hasti. Be kudamaz hii ma huwaayat kune. Wa ina bagi khatir berada laham yang mengatam, Sharaid khasas hamas hata darimah di masyarakat maafir nabarish maafir nabarish khayla khasas. Bera bingung kallahu azawajal Bama sabr wa maa istiqamati wazifim asya berada laham yang mengatam. Ke Ina bagi khatir berada laham bahasim ke haq اگر حقایق پوشان دی بازبایی خودت چیکم؟ گفتم برادر پشتون بازبایی خودت تین کن که لباس آتش را باید بپوشده اونجا اگر این که لباس آتشی را ببوشی این را میتونی تعقد داری اگر میخوایید از سرت جوش کسرت سرت که تازهان هم تو بزنن قران کریم در جمعه که برای تا گفته میشه که میفهم اخصه او میفهم اخصه اگر این چیزارا طاقت داریم، باز حقائقا می پوشانیم، باز نظامار اسلامی جرم کنیم، فاسق مؤمن جرم کنیم، مومن باز کافر جرم کنیم، جاسوس جرم کنیم، اگر این چیزارا که طاقت کسی داره، خب ما بایی استیم که ما اجید تحمل کردن، نمی تانیم برادرها این وزیفه ما است که ما باید بگویم برای مردم، این وزیفه ما است و اسلام شو برادرها باید خوص ندارید که باشیم که. اما شبه ی برادرها باشند که اسلام تنها نماز روزه و زکات نیست که آدم میشه یه یک چیزی میخانی کیست؟ اما کوش کشش می دینم میکنند. انسان باید چیزی باشه که کل جو جزارت هنگام وقتی که نماز میخانیم و ایالله وقت برمیگی باز دینی باید باشه باید بود نبود نباید باشد. خوب باید ما توجه جوانان است در اینجا جوانانی که برادرها کستن. یه باید نرم خاطر بیامرسادم که بیرون اسمان الله از جل برادران چنگ بزنی. رسمان الله رو بالچنگ بزنین وری باشین که شما مخاطب استین از طرف قرآن کریم همه این مسلمان خوصین کسایی که نیرو انرژی پیشان است والله والله قسم برطان میخورم کی دشمناز به این دفتنی است دشمناز به این است خو این موهر بدنامی رو به پیشانی خود ما نمانه نگفتیم ما وقت شارع کدم برادره ما مشکل بزرگی نمیداریم که علمای ما میشه در خفا استن اکثر علمای ما چون مجازات که از یه فت همیشه نزدیک میشه باش کلی فتوا میاد. کلی فتوا میاد. که جنگ حلال است. یه زیادی. نه نه. ما در وقت زراب داریم که در اونجا ما میشود. بیبین از درباری مکه شما بیبینید. در مکه کسی که آدیک چی کنن تسمیم داشته دا باشه. همکاتک در اونجا شما از مکه بیرون شهید بیست مکه را خدمت آوریش داشته باشید داخل کابق بیرون شهید در اینجا نشته است بانک آل البنک هست بانک های امریکایی کنشت تامل با چی صورت میگیره باسود صورت میگیره که جنگ با الله و با رسول صلی و علیه و سلم این نظام اسلامی است این نظام اسلامی است که در افغانستان سر مردم بم میریزه در وقت که در سومالیا مردم حلاک مشدن برادره یمین نظام سعودی ملک فت با, با چند میلیون دلار کمک کرده بود با باغواش در لندن این نظام اسلامی است. این نظام است. نه این نظام اسلامی است بگیواشی. من نظام ایران اسلامی است. این نظام انصری، این نظام طایفی، نمیگن نظام اسلامی بر ما بگویم. نظامی که نوا سرحد میشناسن. نظامی که نوا صحابه را دشمن مرتب. نظام شما ببینین حالت به کجا کشا اینا شده. آل بر خاطر تشیه منطقه فیلن چی دارن؟ برنامه هست. این نظاما بکشو یک نظام اسلامی نیست. ملت‌ها از اینا جدا هستند. ملت‌ها به هستند. ملت‌ها مثل به چهارا هستند. از این قدر ما می شکنه نظام مطلقا نظامی اسلامی نیست ما باید باشیم به خاطر باید کار باید کنیم زحمت باید بکشیم ها اگر اینا لباس عادی شین متون طاقت کنیم مثل بعضی کسایی که بندخونه طاقت می کنن گپ میزنم خب اگر این لباس عادی شین طاقت داشته باشیم باش خلاص كله گریکت ما حقایق میکنیم مردم هر کی سرچبا جلوی می خلاص گفتی بعضی عربا که ماشیل حال وقت شانتیر میشه لا گپ اصلا اصلا نزرفت والله یاசாமி بس ما بی اکتفا بیک